جناب اون البنین اسمش میدونید فاطمه است وقتی عقدش کردن آوردن خانه یمیر دمه در گفت یا <تصفيق> علی جون یه خواهش دارم تا بیام تو خونه چی میخوای؟ منو تو این خونه فاطمه صدا نکنید من اومدم کنیزی بچه های فاطمه دارم. معرفت رو ببینی. منو فاطمه من اومدم کنیزی و های فاطمه زهرها رو بکنم معرفت رو ببینیم اولین پسر عبلفظ غمر بنی هاشم متبلد است گنداغش کردن دادن دست بابا امیرالمومنین. المؤمنین آقای واشکی بند گنداغا رو باز کرد این دستا رو میبوشی گریه میکرد <تصحیح> امول من مادره عرض کرد یا امیرالمومنین. دستای بچه هم مشکلی داره نه اون حال بنیم اونی که من میدونم تو نمیدونی نمیشه آقا به من بگی حضرت فرمود کربلا این دوتا دست در حمایت حسینم از بدن جدا میشه. مادر چه میکنه ها میشه قمداهه عباسش رو میگیره دور سر امام حسین میگرد تا آخر عمرم چهار پسر از این مادر در کربلا شهید شد ولی می اومد تو قبرستان بقیه می گفت برای حسین عزاداری می کنم. نه برای بچه های خودم این مادره حالا این پسر تمام وجودش عشق به امامت در مقابل اون مردم نشون بده شما نقشه دارید که ولی الله را بکوبید من در عمرم به امام حسین میگم یا سیدی و مولای